خلا دقت داشته باشید درس سیفون تشبیح و تمثیل تشبیح تمثیل دیگه تشبیح تمثیل چه <تشبيه> هست؟ <التمثيل> الامثله الامثله قال المحتوری هو بحر السماحی والجود فزدد منه قربا تزدد من الفقر بودای <بؤدن> صفحة سيوسف تشبیه تمثيل تشبیه الامثلة قال المحترق هو بحر السماح والجود فزدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا به او به دریای بخشندگی او گذشته است نزدیک شو به او یا نزدیک... نزدیکیت را به به او که به فقر دورتر میشه یا دوریت از فقر بیشتر میشه خب در این مثال و بعدی رو هم دقت بفرمایید و قال امرؤ القیس امرؤ القیس گفته و ليل كمواج البحر ارخى سدوله علي بانواء الهبوب ليبتلي بجه وشبیست بمانند موج دریا ارخا سدوله فروه اشتهاس پرده هایش را درازش دست رها کرده از چایش را پردهها و سترش را بر من این شب به انواع حبوبی با انواع غمها لیبتلی تا را آزمایش رو کند. اینجا هم تشمیل کرده از شر رو بمانند چ بهمانندبوج. هو جداريا. أما در مثل سيفود قد بفرميت، وقال ابو فراس: والماء يفصل بين روض الزهر في الشتى لفصله. ميجاء أم جدائي عند ذات بين باخ بيرقول هاي باخ يا باخ يقول. در دو طرف یعنی گلار رو از هم دیگه چیکار میکنه؟ جدا شد میکنه کبی ساقن جردت عید القیون علیه نشلا مانند یک بساتی که پهن هست واشین ولی نقش نگار داره چه داره مانند دا یک بساطی فرشی مزین که جردت ایت القیون علیه نسلا که کشیده است دستهای سازندگان سلاح قیون اونی که اسلاحه درست میکنه نسل همون تیزی شمشی رو بگن اون قسمتی که بی در این, این تشبیه با اون تشبیه قبلی فرق داشت وشی این چی به تو سوال وشی یعنی منقش یعنی مزید جره دست بریده دست بله. قیون حيول أصله صازارو مجان، جرد يعني كشيدان، جردة يعني كشيدان الشمسية. هلا يندي قدرش دواشي. دارين مثال، والماء يفصل بين الروضي بين الروض الزهري في الشطين فصلة كبساطي. وشی جردت اید القیون علیه نسلا اگر اینجا تو این مثال دقت کنی با مثال قبلی با دو سال قبلی خیلی فرق هست تو دو دومی سال قبلی یک صفت یا صفاتی دیگر بین دو چیزی بودند مشترک بودند یا مثلا اونجا شب با موج در تعاریکی و تض با هم مشترک بودند زمانی که وجه شبه هم این حالتی داشته باشه بهش میگن مفرد بهش میگن چی اما زمانی که دقت داشته باشید اما زمانی که تشبیه ما تو این درد میخواد تشبیه تمثیلش رو به ما یاد بده. روش برعكسه. ما خویدار و نخوانده یک چمیس ساله میفهمم. مشکل نیست. قاعده اول. اول بیای دروی قائد. القایده نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. وجه شبهی فیهی صورت منتظعتن من متعددین و غیر تمثیلن اذا لم یکن وجه شبهی کذالک میگه نامیده میشه تشبیح تمثیل زمانی که وجه شبه در آن یک صورتی باشه که از تندین چیز گرفته شده باشه نه مشکلی اصلا نیست زمانی که نامیده میشه تشبیح تمثیل زمانی که وجه شبه در آن صورتی باشه که از چند چیز چه چی بشه گرفته شده باشه و غیر تمثیل نابیده میشه وجه اون تشبیه زمانی که وجه شبهش اینطور نباشه بله. حالا در همین مثال سوم اگر دقت بکنید ها میگه و آب فاصله میانداخت بین گل باغ در دو طرف مانند بساتی که نقشون نگار شده بود و کشیده بود دستهای سازنده سازندگان اصلیه بر آن تیزی چه رو فارسیو یعنی اینجا وجه شبهشون از چندیل چیز گرفته شد وجه شبهشون از چندیل چیز گرفته شد؟ این نوع تشبیه رو میگن تشبیه؟ <تصفيق> اگر من بیان بگم آقا تو در هدایت مانند نور هستید این میشه تشبیه غیر تمثیب ولی اگر من بگم رفتم داخل باقی که انا... که جادی جدایی انداخته بود بین درختان دو طرفش آه؟ به مانند نمیدونم یک قالی که در این قالی فلان بود آه این وجه شبه این چیز گرفته شده اینو میگن تشبیح این. تمثیل وجه شبه شد؟ آره ببین این تشبیحو بعدم میاره به رو که کلی دنگ و درش داره پس در این مثال ابو فراس میاد حالت آب جدول رو که جاری هست بین دو باخت که بین اینها گلهای با قشنگی هست اینو تشبیه میکنه به حالت یک شمشیر درخشنده که اینو کشیدند و روی چه گذاشتن یک فرش نقشدار ببینید اینجا دقت داشته باش؟ اینجا ابو فراس میاد آب این جدولو آب این جورو تشبیه میکنه که این آب فقط نه خودش ها میگه آبی که بین دو باغ جاریه و این طرف و اون طرفش گلها هستند اینو بیاد تشویر میکنه به یک شمشیری که اون شمشیر درخشنده گذاشته روی یک بساته منقش اینو میگه تشبیح چی؟ تمثیر یا مثلا در مسال بعدی بیر قدر بفهمانید این میسته رو یک دیگه از اون تصویر نیست که نه دیگه اون از اون نوع مفردشه. و قال المتنبي في صف... في سيف الدولة المتنبي در وصف سيف الدولة میگه ی حز الجيش حولك جانبي به حرکت در میاره ارتش اطراف تو دو طرفش را چپ و راستش را کما نقضت جناحيها العقاب همانطور که به حرکت در میاره دوبار رو اقاب ببین این تشبیه تمثیل اینجا کنش تشبیه کرده متنبی اینجا تشبیه کرده متنبی دو طرف لشکر رو یعنی راسوچپش رو به چی چیزی به صورت یک اقابی که دوبالش رو چکار کرده؟ اگر خود متنبیر و شبیه به اقاب میکرد اون موقع مفرد بود آه؟ ولی الان چیه دیگه؟ الان کمسیله الان چیه؟ وقال سرینج و رفع وقال سرینج و رفع این هم یکی از شعرهایه dinamik yaschaye sari wa rafa mige wa ka anna al hinala dunu lujaid gariqat fi sahifatin سری و رفع اومده هلال و تشبیه به مثلا صحیفه بکنه فقط بلکه اومده بیان کرده هلال رو بعدن هم شبیهش کرده به یک چیز دیگه بیان شده ای. به بی چیز دیگه در این بیت اومده حالت هلالو که می درخشه و نون ماننده, ماننده که در آسمان آبی هست اینو تشبیه کرده به یک نونی که از لجین هست از نقره هست این حالتا حالت نون دیگه به این شکل قوس قوس قاسم. بله پس اینجا هم وجه شبه صورتیست که از چند چیز چه شده بانتظه شده گرفته شده یه وجه شبه چی به و شبه دیگه اینجا از چند چیز گرفته شده خب ماه که به اون شکل در آسمان سرس اینجا هم تشبیهش کرده به یک نقره ای که این بله همون حالتشه آه؟ آره دیگه وكأن الهلالا نور لجیت گویا که حلال مانند چیه؟ قوس یکه ولی در درخشندگی مثل چیه؟ دوکره پس این چندین چیز شد غرقت في صحیفت زرقا که غرق هست این نون دولا لوجهل در یک چی؟ باله زرقا یعنی آبی باله زرقا یعنی آبی پس این نوع تشبیه و بگن تشبیه، چون در این ستا تشبیه آخری وجه شبه یک است که از چیزهای متعدد درست شده از چیزهای مثل خودمون الان بیایم مثلا بگیم اگر ما اومدیم مثلا یکی رو گفتیم شما مانند خورشیدی این که بیشه مفرد ولی اگر اومدیم گفتیم آقا خورشیدی که درمیان عبرهای عبرهایی که بینشون مثلا فاصله بود به مانند فلان چیزی که اون فلان چیز هم مانند فلان حالتو داشت این میشه به زبان ساده این میشه زبان تشبیه تمثیل این میشه تشبیه مثل همین امثلهی که آورده بود حالا اگر ما در استلاح انچنان قوی بودیم که اینو توضیح میدیم ولی از حالتهای شما متوجه میشه که اینو چکار کردید فهمیدید حالا اگر تعابیر دقیق نبوده یا روان نبوده یا قوی نبوده اون حالت دیگه ایست پس من قاعده رو باری دیگر میخونم میگه نامیده میشه تشبیه، تمثیل زمانی که وجه شبه در آن تشبیه صورتی باشه که از چند چیز متعدد گرفته شده باشه و نامیده میشه غیر تمثیل زمانی که وجه شبه چونین نباشه پس تشبیه تمثیل بحث خیلی فقط در تشخیص بحث ساده هی. شما در تشخیص تش... بله نبغضها شو بنخرب ونبسيكوني قال ابن المعتز قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سوق الهلال بالايدي يطلس ثريا كفا غير شره يفتو فاح فاهو لأكل أنقود دلين تشبيه هم تمثيل وجود داره چند چيزو تشبيه کرده و چند چيز ديگر وقال المتنبي في الرسائل وما الموت إلا سارق دق شخصه يصوله بلا كفن ويصعه بلا رجه اینجا هم خب، یجا دقت کن. قد انقضت دولة الصيام و قد بشر ثقب الهلال بالعيد. ایجا صورت هلالو تشبیه به چی کرده؟ اینجا دقت دیگت چقدر چیزا رو تشبیح کرده به چیزایی دیگه قد انقضت دولت سیام و قد بشر سوق بل هلالی بالعید یطلو سریا کفا سر غیرن شريح يفته فاح لأكل الخود إن تمثيلا مثال بعدين دقاتكم وقال المتنبي في الرثاء وما الموت إلا سارق الدق شخصه يصول بلا كفن ويصعى بلا رجلت در المثال موت تشبيه بالدوز كاردي وما الموت إلا سارق الدق شخصه يصول بلا كفن ويصعى بلا رجلت بدون کف حمل میکنه و بدون پار راه میره چون اینجا مشابه ما چیه؟ موته مشابه ما چیه؟ مشبّهان به چیه؟ دارق هست که سارقی هست که اعضا نداره واجه شرح چیه؟ همون مخفی خ... بودنه چیه؟ این بیشه مفرد دیگه اما در سیومی دقت کن وقال شاعر و تراهو فی ظلم الوغا فتخالوهو قمرا. یکر رو على الرجال بکوکبی در مثال سومی شاعر ت و فیدول بهلوقا بله و تارا و فی دوله بهلوواغ فخالو هوخبرا یا ک رو ال ررجی کاکری. داشته باش در شوار سوما تشبیح میکنه او بودی رو که داره مدهش میکنه. در حالی که در دستش چی هست؟ شمشیری درخشان هست که داره تاریکی های غبار زلملوواقا تاریک های چی رو؟ غبار رو پاره میکنه. پس در این مصرا مشببه ما چیست؟ ممنوهش هست که در دست شمشیری درخشان هست که با این شمشیر درخشان تاریکی های غبار رو چیکار میکنه؟ از هم پاره میکنه یوتشام شری و خب با توجه به یک اورو دیگه حمله کردنه نه یک اورو معنی چی است؟ پس می پنداری او را کی قمریاسن؟ بله قمرین ماه دیگه یک اورو علاوه جو بله خب اینجا کوکب حالا اینجا دقت کن مشبهون به چی است؟ موشبه به هی بله صورت قمر هست که باز می کند پاره می کند تاریکی های فضا را بیگه فی ظلم الوقا فتخالهو قمره تو گمان میکنی که او جاست خبر هست, قبر هست. یکور رو علال رجالی بیکوكبی خب اینه چی پس اینجا اومده است صورت ممدوحش رو در حالتی که در دستش شمشیری وجود داره و با اون شمشیر تاریکی های خوار رو پار میکنه شبیهش کرده به شکل ماه که تاریکی های فضا رو چکار میکنه؟ باز میکنه پس این یک تشبیه چی شد؟ تمثیل تشمیح کرده صورت ممدوهش رو در حالی که در دست شمشیری هست و با اون شمشیر تاریکی های غبار رو باز میکنه تشمیحش کرده به ماهی که تاریکی های فضا رو اون ماه چکار میکنه؟ باز میکنه پس تشبیه اگر چنانچه وجه شبه یه صورتی داشت که از چند چیز متعدد گرفته شده بود بشت میگن تمثیل و اگر چوری نبود بهش میگند؟ غیر تمثیل یا همون مفرد یعنی به وجه شبه بیگن مفرد و به خود تشبیه بیگن تشبیه غیر تمثیل. تمثیل تشبیه تمثیل و تشبیه غیره تمثیل. از این اعتبار یا تشبیه تمثیل یا بله از این زاویه تقسیم بندیش ها از این زاویه که آیا این وجه شبه از یک چیز گرفته شده یا از چیزای متعدد پس از ظاویه های مختلف تشبیه تقسیم بندی میشه از ظاویه های مختلف